حاول بیاد من الشیطان الرجیم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و الله و الله. اللهم و جمیع االلهم نعمة اصطلاح معروف در این 17 امانت تمام روایات رو که حضرات اخباری ها در باب عدم خود جیهت کتاب بردن با شارد وارد شبیرن در کتاب وسائل خوندیم و جوابهای ایشون هم از معارضات رو ارز کردیم دیگه به همین مقدار کتاب میکنیم آن اگر مایلن در این کتاب جامل احادیث هم مخصوصا این قسمت کتاب زمان خود مردم های برو شاک شده ایشون هم بابی دارن و بیشتر اون روایاتی رو که اون ترتیبست که تن تو که به ثواهر کتاب رو آنون بگه همونجا مراجع کنن و نتیجه نهایی رو به این روایث رو هم چون یه باقه هم همیشون قرار دادن اون باقه چاردن هم بکنیم که بحث تمام بشه اون و. برگردیم به زواهر کتاب باب 14 ایشون در افواق سفات القاضی به حساب این شاق دست من 152 بابا عدل جواز استنباط الاحکام نظریه مثل همونجا از زواهر کلام النبی اول زواهر کتاب بود بعد زواهر کلام رسول الله المردی من غیر چهر کلعیمت علیهم السلام مالم یا علم تفسیر هون من هون علیکم پس معلوم شد که ازده از علم های اخباری خرده بین زواهری که خواهر سنت نمیدارن کلن حجت نمیدارن لکن بیشتر معروف تفریره بین این دوتاست در این جای حدیثی رو اول ورده از کتاب کافی مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم انعبیح حما، آن ابراهیم ابن عمر یمانی نه همه سران آن ابان ابن عیاش. این ابان ابن عیاش اون راوی اصلی سلیمه یعنی به امثال دیگران سلیم ابن قیس هلالی این کتاب معروفی رو که داده راوی اصلی کتاب ایشامه هم راجع به سلیم باز بخش خیلی طولانی بشه هم راجع به خود ابان ابن عبیعیش فرمان جاش اینجا نیم عبان نبیعیاش زاره حتر ظاهر خیلی امز زود و برق و تقویه و در بسره بوده ایشان معروف بوده نکن خب داشته از این دور و ادهی از علماء بسره خیلی با این بد بودن به حیل از حد تا هم خارج شدن پیاش اینجا نیست مرحان در کتب ما که الان داریم از مثل ابن قضائری نرکده از خوابنا یعنی سبون وضع کتاب سلیم علی در بین اصحاب ما توسیق طریقی در قدما نداره یعنی چیم که ساقیه از خوابنا اما تضعیف داره بلکه برزن ابن قضائری علامانو قلعه آن این عبارت درست باشه که اصحاب ما وضع کتاب سلیم رو به این شخص نسبت میده این عبارت نصابنا عت گ این هم ما نفهمیدیم مراد ایشان چیه؟ شما این عبارت جی که هنوز ندیدیم و ایشون چطور از ازصاب رو ن میکنه اون را هم هنوز زدم. بر اماان حدود چه ساله بوده در حدود سال های هجری سین حیس میاد در وصل قراری بوده از دست حجاج با او برف میکن این کتاب رو به ایشان میده. که ابان قبل از سن بوله بوده البته خود شخصیت سلیم خودش یک بحث خاصی داره در روایات آمونه الان هست ادیه از واد با عنوان ابو صادق فعلا به حساب ظاهر در کتب احل سنت هست به نام سلیم اونقیت وجود نداره خیلی در بعدی از ما که حال این یک شرط طولانی داره ما ارز اجمالا کتاب ثابت شخصیت سلیم ثابته و خود اخوان النبی عیاش هم ادبه از احل سنت توصیل شد از در آقای مفتن صدوق چون ما ها نداریم اما سنت این هم از از اجای رو هم و هم قال قول الامیر المؤمنین این نی سمعت من سلمان و مقدار و عبیره شیعن من تفسیر قرآن و احادیث عن النبی غیر ما فی اید نانس و حیدت من این شلا فقط عرض می کنم علت اساسی که به نظر من ده از را در اخیباری ها را من حضا حضره هم زواهر کتاب سنت و زیر سوال بردن همین ای که سلیم اینجا میگه سمیت تو از اینها من تفسیر قرآن و احادیث اندهی غیر ما پی ایدنه هست بیرن متابقه بارعی نیست با عهد سنت نیست صبح سمعتم این که از امی تصدیق ما سمعتم این هم و رئیت عید الناس اشیاء کثیرتن کلمه اشیاء به منصرفه على اختلاف در علم و رئیت و فی عید الناس اشیاء کثیرتن من تفسیر قرآن و احادیث من نبی الله و ان تو خالفون هم پیه ها و تز امون هم نزاله کل این حسن مثل این بودی در حقیقت به نظر ما اینا برای آن اون اخباری خودشون راحت میکنن گفتن ناظواهر کلام کتاب حجت ناظواهر سنن مروی الله علی رسول الله و علی من سالت فاطمه جان من اگرون واقعم در زیر روایتی که در احتجاج تبرسی بود قسمی اولین کلامی است که ما داریم که آیات و قرآن رو تصدیق می‌کنه علیه مؤمنین. بسن اعلی و کل الناس و و علم الله و, و رسل رسول قسم که من صفه نو و تو به سو این هم خود از ثانی تقسیم می‌کنه. اونجا از کردم اون به احتجاج سند نداره. انتلوس فکر کردم مثلا تو تمام ثواب شری بوده بعد ما حضرت را به کتاب سلیم نکته اساسی راجع به کتاب سلیم اینه که حالا صحبتهای زیاده نسخش به شدت مختلفه لذا خیلی کار تمسا که به کتاب مشکل درد به شد. یعنی الان همین کتابی که به اسم سلیم هست روایاتی داره زیادی در مسادر دیگه نهاره همین کافی روایاتی از سلیم تقریبا میشه با اولیه کسی که کتاب سلیه رو یاد کرده پیش شما همین مرموم کلیه که کتاب باید از کتاب سلیه داره که در کتاب موجود هم نیست خیلی ترچوبا باید خود مرموم کلیه نرمی کن درد هستنیر یک جوابی بیده من سابقا عرض کردم تا اونجایی که من میدونم ولی علم و اندالله سبحانه وتعالی در میان احل سنت و حتی بیان م... یعنی ما مثل این دو که مثلا به رسول الله عرض کرده یا رسول الله ما چجوری روی احادیث شما رو حل بکنیم مثلا شما احادیث متعارضه کلمان به متعارض. نداریم این ما اینجا امیر المؤمنی شاید به ذهن ما اینطور بیاده اولین صحابی که ما میدونیم سعی کردن تعارض روایت پیغنبر رو جواب بدن که این تعارض از کجا پیدا شد و چی جویی هم باید حل بشه این تا رو ضروره پیمون حضرت ما اینه بی اید ناسحقن و باطلن و صدقن و کدران و ناسخن و منسوخن و آمن و خاص این تقسیم بندی آیاتن به این ارز کردیم در مسادر موجود ما به عهد صحابه وسلم اون برمیگرده اما یک مثلا روایت خیلی طریق واضحی داشته باشیم از ایمان صادقه هم منصوب اما و محکمند و متشابه ها و حفظن و وهمه شدین وهمه شما روایات باشد و ایمان قرآن باشد زغت کذبه یا على رسول الله على حتی قام خطیبه و قال ایوه الناس. از کسر از علیه کذابه هم بخشیده دو غاز یاد شدن که من که به وحلی متحمدن فلیه تبه و, و مغرض این تحبیر که من که به وحلی متحمدن رو پیغمبرن در اینجا پرمودن چون دباره که آمده تو آمده که یک نفری بوده رسول بوده یک روستای اشیعی زن بیره بشن زن. آمده مدینه بعد برگشت ادعا که من نصد پیغمبر وکیرم من مهنده رسول الله هم به او دادن هم او زن دادن بعد شبیه توی خیمه خودش رو در خیمه آتش میگیر و میسوزه این شخص بعد چرا از گفته میشه پیغمه هم من کبه به علیه متحمده هم فریعتا و من مقرد رو کسی که دروغ همدی من بگیه خدا رو میسوزه و آتش میسوزه این اونجور نقش شده اینجا از کسرات کدابه الان شواهد تاریخی رو این عبارت فعلا نیست مگر اینکه که بگیم نقل اونم گفتن که خود سنیان مثلا خود دستای خلافت رو حلس بشه سمه خود بره اینم بعده اون وقتی امیر المومنین یک شرح می در به حدیث عرض کرم تا اونجایی که ما می دونیم که بحث اصولی در بحث تا آروز این رواید افنی است که تا آروز رواید رسول الله رو داره این از صحابه از امیرمونی من از کسی بگی نایدم چهار جور هست حدیث یک رجل المنافقان یک از دیگه هم اسلام متسنه اسلام لایت اصم لایت جبر یه لایت یک رسول الله خب اینا دارن در کتاب نهر براغی ابن عبدالحلی الان تمند نظر مرسل نهار کرده داره که مثلا یک مرتبه ابو هره گفت دستان خلیلی رسول الله تحبیر دید فقاله و علیه و علیه السلام من ساکتان خلیلت یا کهدار تحبیر دید این رجوع کهدار درد خیال نه برمایی منافق مراد اون افراد بمنا خودشون احمد سنن نهار کردن که امیرون من ساکتان خلیلت یا کهدار علایه ها این یکی این یک قسم. درست هم هست و یک قسمت زیادی از کارهای های زشت و انصافه ابو هره مخصوصا بعد از امیرالمومنین انجام داد زمان معاوی انجام داد و بخواهی شهر حالا شدید که این شخص کرده سود می البته خود احرشونت هم دارن که عمر اون حواخه گایی با الله هم بشه گفت اینقدر از حضی رسول الله حدیث نحن نخون یه خب ما با رسول همه رو خورده از مکه باقی خبرده بود تا مدینه ما این هم این هم نشیدیم فیلو این رسم اول که این خب خیلی مشکله افرادی هستن زاهر و صلاح این در واقع بسم صحابه و ها و این مشکل و رجب همه رسول الله شیعه هم لم یسمه و علاوشه و ره ودم می ازعمد كزن وکربا انداز دروغ نمیگه اشتباه کرده خودش هم بفهم اشتباه نود نمیکنن. ففاقافیه یقول رو به و یحم به و یروی و یقول عسمیت اون را سوداد فعلم من مسلمون ان او مهمون در افظور و اهعلم هو ان او بهمون در افذ این دوزار که این اشتباه میشا. و رک اون سال یک بحست میشم که دروغ نمیگرد بهرم نگردن پس که مثلا سال ششمه هجرت آماده تو مدینه یه چیزی دیده شیده رفته دیگه سال هفتون یا هفتون پیغمبر رو نصد کردن اون نصد خیلی نشیده ناصد رو نشیده یکی یکیش نشید و رجبان سال سمسن رسول الله شیعن عمل به سمه نه ها ان سم نها ان و قولای عدم عوده ها هم سمه عمل به و قولای عدم احرک بدن منسوخه و یک طب ناصف اصلا نیم باید میکنه ناصف تو زیم نشن بوده اصلا آمده ادهی اصلا روایات آمه اینجوریه مثلا میام کنم مطلب رو اینشه کنه در عشیره ما بود با وقتی ما رفتی مدینه پیغمبر اینجور دو روز روز مدینه بوده برگشته تا آخر آنون دیگه ننفته دیگه نیمیتونسته که مطال که بعد چی بوده پیغمبر رو تحییز داد منطقه خودشم بزنید که این منسوخه لرفزه بود بله ولو عنی من ناسو سمعو سمعو من هم نمو منسوخون لرفزه این سه طائفه و امیرون در این ذکر ساعت چارم حل این مشه رو هم انجام میدن و آخر رابعون و آخر رابعون لم یگذب على رسول الله مقردان برکیز خوفمان الله و در رسول الله لم یک خوب بلحق بردس ماسنه حلا این اشاره به نصد مقالا که خودشون رو قول من هم حدیث متکلمه روکه حدیث متکلمه وقت هست این بیان حکارت نصد متکلمه اینجا اینجا بیانه حالا خودشون که من کسی هستم که تمام رو میدونم اولش آخرش ناصد نصد خصوصی ها فجاع به که ما سر احلم فی ولم یم منه و علم من المنسوخ فعمل بن ناصف و رحمل منسوب فإن هم الله نبی صلی اللہ علیه, و علیه و مثل القرآن من هناسقون و منسوقون و خاصون و آمون و محکمون و من رسول الله الكلام له و وجهان کلامون آم و كلام خاص مثل القرآن الان تمام نظرت علی رسول الله آیتون من قرآن الا اغرانی ها و املاقا علی فکتبت ها به خطی ما این این از اوژه ها به جدی درست هم شواهدم خیلی فراغانه در کتب سنت شواهد شواهدش شوی متفرد شده در کتب سنت شواهدش از شواهد شیعه بیشتره خیلی عجیب که امیرمون رومین بعد از رسول الله خواهد خانه خارج که این قرآن جمع کرده و بردن در محصر تحاقه کن لآجه تعلیم اینو در این آمان که درمونان درم و علمانی ها تفسیرها ناسخها منسوخها محکمها و خاصها و در الله لی ان یعطینی فهمن و حفظا فما نسید آیات من کتاب الله ولا علمان علیه علم علمان املاه و علیه و البته حدیث طولانی و ساداشم حرص کرده ایشان و این مطلب درسته یعنی ما اونی که به صندوق واضح داریم به طریق واضح داریم به شوازی فراغان که در زمان رسول الله نوششن در جلسات خاص از توی دنبالش میفرماند که من جلسات خاصی می وقتا می نوشتم چند در کتابه ندام مصنفه اولایی شیده چه اون صندوق عبدالرزا نرم میکنه از ام سلمه ما همین روایت ناییدم در مسادر خودم ناییدم مسادر آمه که یک یه روز رسول الله منقل من بودم علیه ابن عبید صالح اونجا جنشه یک پوستی با حاضر هم همیجور سآل میکرد و مینه بشه از رسول الله سآل میکرد کلام رسول الله میگرد از در این که اجمالا امیرالمومنین المؤمنی مجموعی از امور رو جمع کرده بودن خود امیر المؤمنی به اثر ظاهریه بسته ظاهرن نوشتن رو در مکم بلد بودن صابقن توضیات که علکن میشن با مقارن بازور اسلام شخصی از اراق میاد از گیرره به اصلاح که به سلام وقتشونن خط هیری که خط سوریانی بود بعد شد خط کوفی به خاطر نزدیکی گیرره کوفه این یه تصادف رو به میشد شما مکه و خواهر به اصلا ابو سوفیان بر گرفته و ادره از یمان های مکه را همین خط هیره یاد داد مثل عمر و معاویه و عروسوفیان اینا همه از اون یاد گرفتن این چون خط متعارف مکه نبود اهل مکه اگر خطی داشتن خط مصند بود یه خط یمانی بود و خط سوریانی در خودش در همین هیره در خود سوریه شام به عنوان خط مقدس بود مثل خط سوریانی رو مثلا توبرات و انجیل رو کتب مذهبی مقدس و عبیه رو با خط سوریانی میدشن یه یعنی خط مقدسی حساب میشد و از همون عوائل در مکه هم قرآن با همین خط سوریانی یا کوفی نوشته شد چه خود درمیه رو ممنون میکرده ماست بعدم کینا اینا مدینه آمدن همون خط رو در مدینه ترویز شدن در مدینه دو تا خط بود خط عبری بود که ما بود یکی هم خط سوریانی یا به خط هیلی یا بعدهای معروف شده خط کوفی که این بسیار مصرمان ها باشت و قرآن و اینها رو می روشن یکی دو نامه فعلا موجوده که ادعا شده که اصل بر خط خود بر اکرمه زمان فیغمبره ادعا شده یک شمت نامه از چاب شده بوده یکی هم چاب شده یکی شمداره برکسر و با, با علی و مردی صالب اونها هم به خط کوفی هست البته خط کوفی ها دقیقا تو این لحظه سوزه نمیز شاید در اون وقت شهی دقیقه همون بینده خط کوفی پخته ایه یک ای مقدار پخته تر از که از زمان پیغمبر مرشد علایه خانه ورواه و رزیفی نهجه بلاغه مرسلن شنون از کتاب سلم بوده ورواه و ترسی از این مطلبی که اینجا داره از کردن اینا شواهد خیلی ریز شده اما فراغانه تو کتب احسانت بشید میتوانگو از کتب ما هم به یکی معنای داره در این که هم قرآن رو نوشتن و هم به اصطلاح احادیث رسول الله یعنی کلمات رو از رسول الله گرفتم که تعدیر شد بین بینه از امع رحمان سلام بانوانه جامعه یعنی صحیفه جامعه ایشون از پیغمبر جامعه ای رو نرم می که دست احفاد و اولاد حضرتون این مطلب مطلب درستید به لحاظ سند خب چون عبال عیاش هست و خود سلی به هر طب ظاهر به اصل مطلب مطلب درستی و مطلب صحیح ایسا یک تحلیل بسیار خوبی برای تااروز روایات و حل این تااروز از تعبیر امام من میشه حل هم به نظر دقیق با قواعد بحث و حصول نمیشه ما الان آن رو با بحثای اصولی سعی میکنم حل کنیم مثلا یکی اشهر است. یکی اصحف و سندن است. یکی مثلا اکثر رابیه هست از این بحث اصولی این میگن یکی با بحث اصولی میگه این هر بحثی که این تعارضه و اعتراضه رسول الله رو باید یکی میگه مشترفه به حدیث رسول الله اون بتونه حل بکنه اون که بتونه اشاره بشناسه یه جور مال اشتباهه یه جور مال دروغ یه جور هم مال این که خرد شده ناسخو منسوخ دراز یعنی این با بحث اصولی ما مثلا میگه مرجعات منسوس موافقتو کتاب میگم مخالفتشو مخالفات ال عامه نمیذارم فرض کنید محافظت مشهور بعد مرجعات غیر منصوصه و سخ و سندن از, از این مرجعات منصوصه و غیر منسوس. در کتاب احسان نه در مبنس رسولیشون از یک هشتر خورده خوردهی مرجع که هیچ چونش هم منصوص نیست هم من در یعنی یک چیزهایی رو بگن که یک حدیث خوش رو روشخان بده برای حدیث دیگر نه این روایت باید سنگیرال مومنین اصلا این مسئله باید از راه امامت حل بشه نه از راه بحث اصول فرد برای فهم دقیق از روایت باید رسول الله راهش امامته نه راهش اصول فرد اصول اقائده نه اصول فرد این اجمالا دوست ما قبول داریم اصل این مطلب رو قبول داریم مثلا سر و جوه به بهلوی همینه این رو ما قبول داریم بحث اینا هم کلام توی دیگریه اگر روایتی بود معروف بود مشهور بود و از طرف احضاده هم تعید خاصی روش وارد بود حالا میشه به اختلاف شبون کنه بحث سر اینه به این جزئی که گفت اختلاف آمده از جمله روایاتی که من عرض کردم این معنی میشه از زمان صحابه مشکل بوده الان علمای و همین مشکل برقرار یه مشکل معنی الان ما هم داریم یه مشکل تازه این نیست دیگه این یه مشکلیه که الان ما هم با اهل سنت داریم در ازه از موارد هست مثل مست و خب فیم زیاد از رسول الله تو بخاری هست رو چی بگیم مثلا بگیم باطل این همون امیر رو با می من ممکن مشکل بود در بباریات ایمان مثلا یه ای حدیث در کتاب کافی آمده اذثمنا شجنه احمد بن محمد كي بن سفر سفر. از اجلات از محمد بن مختار انا ابي عبد قلت له ما بال اقوام يربون عن فلان وفلان لا يفهمون ذلك فيجيئوا منكم خلافهم این مشکل الان ما هم داریم اهل سنت و صن ها خیلی روی ما این مطلب رو گونده می کردن که حدیث صحیح ايشو چیه اون اینجا اینجا اینجوری معرمندی میگه ما احادیث اهل احضی سنت رو میبینیم حالا دروغو هم میسن خب نمیشه که دروغ باشه خیلی مشکله اخوات شما خلاف اونها رو نمیبرین چه میشه یعنی عمركم خلافو علیه السلام ان الحدیث حالا قرارت این حدیث بکنه یون سخت کماییون سخت القرآن یا ان حدیث یون سخت کماییون سخت القرآن همون جوابی که رو مهمی درسته اینا دروب نکفتن بلکه این مثلا مال سال هشتون هجری هش بوده سال دهان پیامبر نصف برمونه اینا ناسخ رو متعرض نشد باز از همین مشکل همین پلی ابن و این ابن عبی نجران ان حمید ان منصور ابن نجران این آسرین احمد این منصور نه حازم این هم سند معتبره جای برس نذاره و منصور ابن حازم اضافه برای این که از را اینکه هم هست یه شخصیت اجتماعی یه شخصیت برای خودشالله بید با قول موزیون سه شیخ عشیر مثل رئیسه یعنی حالت بزرگواری خاص و اونطوری داره من عبد الله في حدیث این قال قلتوله قلتوله اخبر نیانه از خواب رسول الله و و محمد و رسول الله و فقال بر صدق حضرت ببینید من همیشه از بحثم یا شما داریم وحده این میگه بریم به احد صحابه چه اختلاف میکنه که از نزدیک حال این رجل کانه یعنت رسول الله، فیاساله و مسائل فیجبو فی ها بالجواب، ثمی یجیو به ازدالک منیان سخو دالک هجام. فنا سخت الاعهادیس، بعضیها بعضن. این مشکل اینه. ببین امام علیه السلام از بافت قواید اصولی صحبت نمیکنه، اصل سنادن، اشاریم که تو ذهن ما. میان روح مسائل و اصلا اون لقب تعارض رو. اون لب مسئله و منشأ تاروز رو شناسایی میکنن و ما هم از سر انصافه در بحث تاروز بهترین مسئله این که ما سر تاروز اول بفهمیم اون لم به سر و دلیلش چرا خبر چی بود که این تاروز شده شد تا بخوایم بعد جواب بدیم آخرین این روایت که ایشون داره در اینجا و هو علی بن ابراهیم هن محمد بن ایسا که از کردی محمد ابن ایسا یخفی نیست از بزرگان اصحاب اهل برداده به ذهن ما ایشان به قم آمده به ذهن ما ننشن در شرحارش به ذهن ما بیران آمده از در کافی نصفه حدیث زیاد داره 6500 تا حدیث هست نه کم تر شد 2300 و علی ابراهیم و محمد بن ایسا که در چند موردش انحدی هم داره از پنج و که هم قلط ظاهرم از کل شواهزی که ما داریم نشون نمیده هر این خودش سفر کرده برای تحصیل این غیر از که ایشون در عواسط عمرشم کورو میشن ولی محلی مروانیم از ذر رفی آخر عمره یا عواسط عمره آخر عمره از ذر زری، زرید, زرید در این کور چون در عواسط حیاتشونم ظاهرم محمد بن ایسا به قوم آمن. و کتاب‌های یونس و چیزهای دیگه رو ولده بین اصحاب ما پخش کرده علیهاله ان یونس یونس بن عبدالرحمن ان محزه نهزه محزه خیلی روشن نشدش این یکی دیشب این یک سنت دقت بکنید و عن بعض اصحاب یعنی مرحوم کلینی اسمی بر استادش این محمد ابن علی احتمالا همون سیلتی باشه ابو سمین درسی این محمد ابن اسحاق این هم نمیشنسی این دوت سندر سبون و ان عبی علی این همه اینجوری معنا بکنی یعنی کلینی چونگوه دارد این اصانه خیلی به هم میپیچه کلینی از ابو علی اصحابی احمد ابن ادریس از اجلال خون حسن ابن علي، حسن ابن علی کوفی نبی عبدالله است بسیار شخص بزرگواری سه رفت ابن آمر بیشون ابن محمد این سه جمع میشن؟ این مهزم پس با ادهی از طور واسهش کمتره بیشتر از نبی قال تو الله خالق الله هالیه و آله اند و آلیم الباب الله من, من الباب این حدیث اشاره به حدیث ملیت و آلیم پیروزه حدیث و جایی بحث نظر از حدیث ملیت ظاهر سندی به ظاهر یک سنده جونتاً معروف و مشهور به احل سنت به صحت باشه نداره این اشتباه نشه یکی ای از این بزرگان اهل سنت از سادات ره اسمه خوبی هم ایشون کتابی داره تفسیر تا الولی کراس مانند یک کتاب شیگه چی راه های متحددی رفته برای اثبات صحت این کتابشون خودشوند چازیمی هم خودش شده شده ده بیس سالی علمای معروف حدیث اسم اینکه چیز ما داده اینه حسین که من, من شاگه دونم انصافان هم حدیث ناسه خوبیه این تفسیر ولی چاک شده یعنی افسد شده انصافاً با سقره حجمش قوائد خوبی داره چون به همین مناسبه که میخواد حدیث رو تصیح بکنه اده از قوائد معروف بین علمه شن حدیث رو میاره و اینکه حدیثی رو به حسب ظاهر س میتونیم با شواهد با قوارد با چی با چی با چی چند تا راه میره برای اون رو تفصیح بکنی و با اون راه ها حدیث سنیم در اینطور علم رویشون تفصیح میکنه آن میتونیم مراجعه کنم تفسیحات و ولی کافی تفسیحات ولی؟ حدیث مدیده تا باب علم نبید. نظر اینجوری باشه تفسیحات و ولی دارن یکی از دوستان بله سیرم که از ج مثل نیست پس دنبال چیه؟ بله نه جزء ساده سه حسنیش و حسینیشان الان کدوم زنده نیمی؟ دو تا براین سل احمدیشی و سل محمدی ال سخا الله خیلی اسمیم زندهم هم هستیم. حالا الان که به ما کتاب خوبیه این ساکن ای از عائلم چاپ کرد چند نسخه ام دو چند تا ام تفسیر کردم و دوستم بسیار جزء خوبی کتاب خوبیست. با سقره حجمش چون مرد بزرگواری سوقن از عیمه شنه خیلی به شن نوشته و سعی کرده با شواهد با مجموع شواهد این حدیث رو تصیح بکنه. این راجع به این روایاتی رو که بود. آورده این به بندی نهایی ارز کردیم به ذهن ما البته این مطلب اصل این مطلب که مثلا بعضی از فتابا یا بعضی کلماتی که از اهل بیس بوده یا از امیر به حسن ظاهر مثلا با ظاهر کتاب نمی صافته و اختصاص به آیات و احکام هم نداره اشتباه نشه مثلا قال لعبیه ایرانی لعبیه آزر در راست ما که این پدرش نبوده امون شده این خلاف رو دیگه لعبیه آزر اصا آدم و ربه و فقره زباهر آیاتی که نسبت گناه رو به چیز داده شده به انبیاء علیه من بعد مسئله الرحمان علال عرش سبا که ظاهر جسمانیت یا یدولاق و قیبیه و این مطلب را ارز کردم در طب هم تخصیص که مثلا از مسئله خیلی مهمش مسئله به اصطلاح مطلع بود را به ارت زن مثلا این تا اونجایی که ما میدونیم برای اولین بار در دستار خلافت احره سنت به همین شکل ما مطرح شده این زمان بنی عمیه هنوز عمر بن عبدالعزیز اصطلاح چیز نشده خلیطه نشده این مسئله مولد بخشون قرار میگیر بنی عمیه در است زن زن در جمعه زوجی از زمین بعد یکیشون میگه که سبب کنید تا کتاب هم بستان ها آلی نامه آلی نامه افتی که عبدالملک بن مروان نوشته من صابعا نهارد کردم عبدالمرکی مروان هم به صد و عبادت و معروف بود مثلا میگن کبوتر حرم میبختن و هم به جهات سیاسی شونزه ساله بود زمان امام مشتوا بود که والی مدینه شد اوز عوائل تکلیفش بود که والی مدینه شد هم به لحاظ چهره علمی شما ها که این ها خلی هم که خیلی محکور از شاید در لكن ملغومه خصوص عبدالملک که خب اون جنایات معروفش هم یکی از اناسر جنایاتکار معروفش هم هر جا هم شاغل جا شدید عبدالملک به هر حال با قطع نظر گفت ای به این جمعه رو گفتی خنه رو شنید بگو به هر حال به این احل سنت یه برای رو کردن برای این علمی رو کردن قد این طریق نفسی که ما خبر داریم یک اوراری بوده پیش عبدالملک مثل آین نامانندی راجع به عرص اینها در اونجا عبدالملک نشوده که زن از زمین ارث نمیبر عبدالملک ابن محوان به سر محوان ابن حکم المحروف این قدر. حالا من اون قسمتش باشه امده داره که یه عمران ابن عبدالعزی نشسته بود گفت که نمه کتاب سجله سجل تربیر کردن سجل به استرامه ما الان هم هم پرونده میگیم تربیر موراده بخیرم پرونده این سجل اشناس هم میاد سجل این سجل عبدالملک مهوانو بیار توش این حکم بعد آمارم نبوله اون یه جوری میگیم مثل این که ما خواهی ما قرآن بیاریم امین این حکم رو ها به درسته کرد خب پس این یک مسئله بود الان خوندیم که هم سلیم مطرح میکنه محمد مسلم مطرح میکنه این یک مشکلی بود در ذهن اینها که ما مثلا آیاتی داریم که ظاهرش اطلاقه به بشناسیم بگوین از اون بعد مثلا ما در باره ی ارث زن حدود 17 روایت داریم در خود رسائل 17 روایت صحیحه برای ارث زن داریم که ارث زن ارث می‌بره این مرحوم شیخ مفید در این وسائلی که بعضی از وسائل داره یک عجیبه بید داره به قول تحبیر خودش از شیخ ناسبی تعریم داره مرحوم مردم کیه یک شیخ ناسبی رو میگه اشکال پرنه اینجور رو همین ارت زن همون شیخ ناسبی که اصلاعیت من شما اینطور گفتن این خلاف قرآن در قرآن داره که زن اطلاق داره که ارت زن داره تقیید نهان علایه این مسئله اصولاً این مسئله سابقه دایه یعنی یک چیزه تاجهی نیست فرسون دیتون مسلمتون اله اهل در قرآن مقدار دیه کلن نیامده این خود در قرآن در خود قرآن اسم دیه آمده اما مقدار دیه در قرآن نیامده کل. رضایی که دین تمایل که دایی دیه زن و مرد و کافر و مسلمان همه با هم یکیه هیچ فرق نمیکنه. کنه فضیعتمان این دیه در حقیقت در بعض رواهات تاریخی اما داره که اولین اول بار توسط عبدالله منطرف شد اینکه که ستا شطور اصل مطلب ترداختی بوده دیه یعنی یه پولی رو مال رو باید ترداخت میکردن به طرف محصولی هسته مطلب این بوده لذا این منچه شد که حتی از اهل سنت مثل اروهنی پردیگرام یه حتی دیگه کافر و مسلمان یکی ایچ فرق که دیگه کافر و مسلمانی یکی می یکی از عدلیشون هم می دوند قرآن دیگه بدون فرق آمده هیچ فرق نمی اصلا در قرآن بین زن و فرق نمیتون. راید دیگه دیگه از اون اینو روزه لحظه این رو گرفتن یکی از شواهده برای این که ای هیچ فرق نخواب چند مورد از احکام از احکام مثال بده چه که روشند بشه این که باید چی کار بکنیم این خوب پای نخواب بین مسلمان ها اختلاف درست کردیگه مثلا راجع به بیه زن یک نامه بوده که کتابی بوده که پیغمبر اکرم نشن از کنجز کتاب هایی که زمان پیغمبر نشیده چند تا رو شده بیان بحث خاص خودشون دارن معرفت از به نامه امرد عبیب بقیر بن حض زارنگ اشتباه نکرده باشن و این مجموعه حتی تا زمان امام صادق موجود بود یه رو دیدیم که امام صادق، یکی از اصحاب عمضان برو خونه اینها یک نامه دارن رسول الله، نوشتاری دارن ببین دیه کلان قسمان چقدره ام ایه برابده این سیان هست و من لحظم اونجور اگر چه اونها نوشتن دیه سلطه بیر فرمان صدق دوست یه همین مقدر دوست در این کتاب امر نعبی هست در آخرش و دیت المرعتی دی و عقل المرعته علم نصر اون عقل رجل یعنی این که تخصیص خورده دیت المسلم که در قرآن آمده روشن شده این صادقش برمیگرده ارسکرم چند بار این خیلی لطیفه که شما این چون راه نالا تو ما نرفته شده نشده. حتی مسادر زمانی اینها رو میتونی درد بکنید از بعد از این دی که صلح خوده دیگه از گرفت و مشکیم بنا شدید کاری درمون سمان ها نداشته و چند در سال 6 و از بعد از سال شکران این سال رو بگیر از سال آخر سال شکران بگرده بود پیغمبر آنم برای عمره برگشتن برای انجام هرزن سر کردن از سال هفتم بعد از ایام هرز یه وقتی اشایر و قبائل فهمیدن مشکل ندارن برای پیش پیغمبر گروه گروه از راه های دور یمن و غیره میانن پیش پیغمبر برای اسلام موردن که سال هفتم با معروف شد به سال آمل و و جمع وقت گروههایی که به نمایندگی میان مثلا به نمایندگی از عشری کلان نماینده ها نماینده هایش میکنه آمدن حالا نهان سال هشتان هشتان که فتر محبه شد دیگه یه مشرکی نهوشی تمام شده هر هشتان که تمام شد دیگه مشرکی که پران بکرسد من نه داشتیم آمدن تن, تن یه مقدار زیادی من نقطه در بحث و اصول لازم نبود که اینجا بگم دلکه اونطوری کشید یه مقدار زیادی از سنن پیغamber مار این زبانه اونسان تو تاریخ است چون می دان پیغamber نامه می نوشتند به اونها مثلا این کارو بکنید این کارو بکنید این کارو بکنید اینا رو به اونها میدادن بعد ها این نامه ها جمع شد در مثل کتاب ال اموال ابو عبید که خب یه موضوع مستقلی شده کتاب های مستقلی نمشتن مرکاتی با رسول و جمع ولی کردن یه هم فتوکپی هست نسخه های افریتی ایزانسی اصلی هم ادعا می کنم موجود آرا سه ادسه همون و خودش یک مقدار زیادی من میخوام از تاریخی بگم منشأ سنن پیغمبر سال هفته من. هم توی اعمال هستن، هم دیات دیاد تو هم توی هست هم توی هم تو مسائل زمین هست تو مسائل اقتصاد هست در همین ساله هفتان که پیغم برای تربازگیری اجباری رو لفت می تو نامه هاشون لا توک شروع ولا توک شروع هشت در سلاح عربی چون بیشون باید تقریباً چیزایی دمیشن هشت نانه تربازگیری اجباری خود کلمه هشت نانه جمع کردن و یعنی جمع بشن یعنی جمع بشن اصطلاح هم بوده وقتی جنگی می اومد علیکسر از این قبیله میگفتن بود دیگه نفر شما بزین 200 تا اون بده ما الان میگم یه سربازگیری اجباری سربازی ای خب بله چون در اسلام وقتی جهاد مطرح شد دیگه هشت نشد خود اونها با اون وظیفه دینی نمی اومدن سربازی ولا خو شون الان ما که شیعه مغلوب بخونیم یه نظام مالیاتی بوده 10 درصد می گرفتن. پیغمبر در این زمان مالیات هم برداشتن مالیات و رو برداشت اصلا این یه خیلی زرافت هم بخواست بحثای ایدی وقتی ما ها بایدی جواب قرآن از ظهور انداختن با با این اگر این کسو نه تا آیه از آیه او و قوامش. القاله دین ها آ در چند تا آیه چند آیه اف. میشه جواب بده میشه کل بندازیم که خب خیلی مصیبتش بیشتره که به کل قران ازهور بندازیم که این خیلی مصیبت باشه. این 4 آیه رو بگین سردی و ارجاع اینا رو اما اینکه به کل از ظهور رو این چه راه هایی بود که اصلا چرا زن ارتیب داره؟ اصلا ما راهی قبول نداریم اطلاق راهی قبول نداریم اصلا اطلاق قرآن راه قبول نداریم به نظر من این اول برای خلاسه کلامینا این به نظر این من هم خوندیم مشکل مشکلشون اینه شما یه چیز میگین مخالفیشون اون چیز دیگه میگن این راه میز اضافا این راه که ما بیامیم الغاق کلیه زهورات و قرآنی رو من از برد خط بکنیم برای که در چند مورد گیر کردیم خب گیر خود رو هر بکنیم اینکه قرآن از زهور از قابب ازخاط بکنیم کلام الله را از زهور ازخاط بکنیم